مرچه داره نه نه داره مسکه داره نه نه داره پچه رو, رو میشه اینجوره اونجوره میشه مرچه داره با با با چیه های دل بنده بابا؟ چیه مرچه مرچه میکنه ای دادی خوشحالم بابا دادی خوشحالم آنه طفله مرسومه من برویم چی شده پسر عزیز بابا خوشحالکم مور چه به جان شافتاده دادی من انتخابات بله. که میشه اصلا حالم خوب میشه اصلا تفضل آفرین پسر از زمان آره. ما با خودمان افتخار میکنیم اه. که شما انقدر حس تکلیفت قویه تکلیف مکلیف, مکلیف چ بله. بابا با بیخیال این حرفا دادی یعنی چه پسر میکنه واقعا مورچه گذاشتی مغز تاپ براشتن نه بابا میگم یعنی آلا. به خاطر یه چیز دیگه خوشحالم بابا زودتر به ما میگه اه. دلیل خوشحالی چیه یا شدت عمل بهخریم بابا دادی. بخ... خب من از زمان سابق بخ... یه آلم کاغذ بنجل چینی وارد کرده بودم مونده آه... بود رو دستم الان برای تبلیغات انتخاباتی همه شرعت کردم رفونم به چه قیمتی؟ <تصفيق> به ب... چه قیمتی بسر جان خوب سود کردم روش دیگه بابا آه خب انتخابات که پسر عزیزم امش آل... سوده برای ما دیگه, دیگه. ما سما اونجوری ما هم یک جوره دیگه <تصفح> دادی بله. تو چطوری از انتخابات سود بردی بگو ببینم ما مشاور تبلیغاتی خوب. لیست برادر دکتر حداد عادل هستیم دیگه باریکال بله. خب حالا چه مشاوره هایی بهشون دادی دادی چه دیگه قرار شد اکس ما را بودرک بزنن بلای لیست لیست مورد تایید حجی بله بابا دادی تو اما بله؟ نکردن که همچین کاری رو بله البته بعدش قرار شد خو. چند جمله از جملات غصار ما رو بزنن بالای علامیه که خب اون کارم نکردن ال... که دادی چی میگی پس شما بله بله البته در نهایت خو. قرار شد یک چیزی نقدی بدن ما بکشیم کنار آنها برن جلو دیگه بعد که انتخاب شدیم ایوه. دوباره یک چیزی نقدی دیگه هم بدن که خسته بله. را دادی. باش. یعنی یکی نقش شما خیلی مهمه تو این انتخابات ولی. یکی هم نقش اصلاح طلبات غلط بکش کلمن جس رو به کار نبر دهانت را بکش بابا امال نفوذ انگلیس و آمریکا و اسرائیل و عربستان در نظام هستن باشه بابا, بابا اون کاری نکن شما دیگه ساعت خوب نیست ای. باشه دیگه میگم اون نشریه با مسمای که داشتی می‌خوندی مرچه و اینا داشت این را یک بار دیگه بخون ببینم برای واسه چی دادی مورد داره نه این خیلی جذاب برادر حداد عادل اون توی نطقه انتخاباتیش بخانه برای جذب جوانان خوبه دادی بله. بابا حداد عادل خودش شعر و اینا میگه ولش بگو تو شعر را کارت نباشه ای بابا اون... دادی میگفت شما خونتون مورچه داره بله. بعد یکی میگفت نه نداره فضل حقیقتا چقدر پر معنی این شعر بگر اینه که شما در خانه گناه سرد میگیره آه. بعد اون یکی هی تکذیب میکنه بی تربیت بابا بی خیال ددی چی داری میگی آخه ادامه شو بگو ما آشق این شعر شدی اصلا بفرماید تفضل میگه که پس چرا هم میشه خب. هی داره مرمورم میشه <تصفح> آه تفضل آلی. مرمور برای مؤمن ثواب داره به خصوص که در اثر مرچه باشه تفضل تفضل دادی میگم بیا هلا ولیش گون میگم داره اصلا نه نداره ای بابا حالا چرا این جورم میشه هی hey داره مور مور میشه حالا چی داره Bale.